الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله برادراء محترم يكي أس موضوعات بسيار مهمة كي هميشا إنسانها خصوصا تبقي جوانما در قسمته بتفاوت هستن موضوع, موضوع حقوق, حقوق والدین است در قسمت حقوق والدین ما شما باید دو کلمه را در یاد داشته باشیم یکی حقوق است و یکی عقوق حقوق به حین نشتم میشه بیادر خیل و عقوق با عین نشتم میشه بیادر غین ایناله در اینجا باید در قسمت والدین باید ای دو کلمه را خوب یادداشت کنیم و در باری ای دو کلمه خوب دقیق فکر بکنیم که خدای نخواسته با مشکل مواجه نشیم خب در سمروز ما و شما به سلسله درسای تفسیر قرآن همس که ما با شما آیت 23 و 24 سوره اسرار را می خانیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى وفسلنا مذ فروردگارد حکم نمود فروردگارد الله تعبدوا یک عبادت نکنین إلا إياه مگر الله جل جلاله وبالوالدين إحسنا و به والدینتان مادر و پدرتان احسان احسان یعنی نیکی بکنین اما یبلغن عندکل کبرا احدهما او کلاهما اگر برسند به نزد تو والدینت در سن بزرگی برسن احدهما یک یزینا او کلاهما یا هر فلا تقل لهما افن بر ازینا افت نگو ولاتن تنهرهما و با صدای بلند هم در مقابلشان صحبت مکن وقل لهما قولا کریما و بگو برشان سخنان نیکو شایسته و اخفر لهما جناح الظل من الرحمه و برایشان بازوی توازوی خود را برای مهربانی پست کن و قر رب برحمهما و بگو پروردگارا بر هر دویشان رحم بکو کما رب بیانی صغیرا هنمون قسم که مرا در حالت توفولیتم یا در وقتی که من صغیر و کوچک بودم اینا مره تربیه نموده ای آیت شریف درس بسیار مهم و درس بزرگی است برای هر انسان و هر جوان و هر نوجوان مسلمان که در باره ایز آیت شریف بسیار توقف بکنه امروز بین که ای آیت شریفه هر کلمه ازوره فرزه فرزه بخش بخش سرش فکر بکنیم و ببینیم که خدای عز و بر ما در این قسمت چی ارشاد فرمیده و ما در مقابل ازی چی قسم برخورد میکنیم در آغاز آیت شریف خداوند متعال جل, جل جلو میگه که و قضا رب بکن میگه فیصله کرد یا حکم کرد پروردگار تو ما مسلمان ها از این کلمه چی استنباط میکنیم چی قسم میفهمیم یک قسم میفهمیم که وقت بادوزی فیصله هایی که شده فیصله های الله جل جلاله جل است حکم هایی که هست احکامی خداوند است بس انسان در مقابل حکم یک رئیس جمهور در مقابل, حق حکم, یک در مقابل حکم یک وزیر در مقابل حکم آمر خود چه قسم برخورد میکنن؟ شما ببینین وقتی اونا در مقابل ما حکم میکنن آیا در مقابل حکم از اونا به میباشیم و یا یکی که میگم که ای حکم رئیس جمهور است ای فرمان رئیس جمهور است ای فرمان فلان وزیر است فرمان آمر است رئیس دفترم است او را صدفیصد تطبیق میکنیم اینجا الله جل, جل جلوه بر ما میگه که ای فرمان الله هست پس وقتی که تو مسلمان هستی و میگه که من مؤمن هستم و عقیده درست داری و میخوایی که الله جل, جل جلوه از تو راضی شود پس تو باید از فرمان هر کسی دیگر کرده فرمان الله جل جلوه جل زیادتر و دقیقتر متوجه شوی و به او عمل بکنیم عقیده بخش نظری داره و بخش تطبیقی داره پس وقتی که ما تو مسلمان هستیم به شکل نظری از او متوجه هستیم باید به با شکل عملی او را تطبیق بکنیم به نهان آنچه در این شریف گفته میشه فیصله خداوند است فرمان خداوند است در اینجا هیچ کس حق نداره که ابراز نظر بکنه در اینجا هیچ کسی حق نداره که ببین با من نظرم از چی هست و مکان لی مؤمنین و لی مؤمنت اذا قد الله و امرا ان این یکونه لهم الخیرات و من امرهم خداوند متعال میگه وقتی که خدا فیسلام میکنه و وقتی که رسول خدا فیسلام میکنه و میگه که ای فیصله هست میگه حق نیست برای هیچ مؤمن برای هیچ مرد مؤمن و برای هیچ زن مؤمن که در این قسمت بوده که نظر مچی هست چون فیصله خداوند وقتی که مسلمان شدید میگه سمعنا و اطعنا. ما شنیدیم و اطاعت کردیم صحابه کرام چرا به نزد خداوند متعال جل جل, جل محبوبیت حاصل کردند؟ و چرا خداوند گفت که رضی الله و عنهم و عنه. چرا خداوند گفت که خدا از صحابه کرام راضی شد و اونا از خدا راضی شدند چرا؟ خاطر از اینکه اونا در مکتب نبوت اخلاق نبوت یاد گرفته نخستین اخلاق در مقابل کی هست؟ اولین و اساسی ترین و نخستین اخلاق در مقابل خدای از سواجل و قبر رب بکن به از چی درس گرفتیم؟ درس گرفتیم که فیصلی خداوند است فرمان خداوند است و حکم خداوند است و ما این فیصلی خداونده در مقابلش ما امسامع آنها شنیدیم و اطاعنا و اطاعت میکنیم یعنی yani با گوش خود شنیدیم و در زندگی 24 ساعته خود عمل میکنیم خب ببینیم که الله جل جلاله جل جل چی فایسلا کرده میگه و قضا ربک الله تعبودو الا ایا. فیصله الله جل جلاله جل این است که عبادت بغیر از الله و کسی دیگه نه رکوع کسی دیگانه سجود به کسی دیگانه خدا سرتا به دربار کسی دیگه غیر از دربار الله خم نکن. قربانی و نظرتا به غیر از نام الله جل جلوه نام کسی دیگه را و وقضا ربو که فایصلی خداوند است. الله تعبدو عبادت چی هست؟ از چیزی که عبادت است ایرا تقدیم نکنید الا ایه فقط به الله جل جلوه. اگر فایصلی خداوند قبول داری عبادت تفقیر از الله و کسی دیگه نکن. اگر بدل خود کار میکنی با مخالف آزاد هستی لیکن اگه میگنی ما بنده خدا هستم و ما فیصله الله قبول دارم بنام فیصله الله انسان اگر خواستی هم دلت خواست احیانا دل نمیخواه دل توبه کنان و نفس گویت از توبه ناسواب توبه نفس میگه چی میکنی فلسفه بگو دلیل خدا بگو نظر خدا بگو کسانی که فلسفه میگن در حکم خداوند و فیصله خداوند دلشون. اما کسی که مؤمن حقیقی هست و قضا ربو که فیصله که متعال تعبدو الا تعبدو که عبادت نکنی الا ایا بغیر الله چنده شد بعد ازی میگن و بالوالدین احسانا. سپس در مقابل والدینتان احسان بکنید. نیکی بکنه شما ببینید که الله جل جلهو عبادت خود، یک جای ذکر کرده با اطاعت والدین از این چیز استفاده بکنید میگه به خاطر ازی که اگر تو میگی من بنده مطیع خداوند هستم و عبادت الله جل جلاله رو می کنم ممکن نیست که تو ای عبادتت تکمیل بکنی و در اونجا مادرت اس حاضرده شده, شده باشه پدرت آزرده شده باشه عبادت میکنی عبادتت دفتر اعمالت با خف ساختن مادر و پدرت خط خط خور نساز ده مضمون که اولش وحدانیت خداوند است و دوم مضمونش اطاعت والدین است نمیشه که در مضمون اول صد ببری و در مضمون دومت صفر ببری و چانس داشته باشی باز کامیابی نیست بس. اگر تو واقعا عبادت خدای عزوجل وجل پس اطاعت والدین هم جزی از عبادت خدای عزا است الله تعبدو الا ایه و بالوالدین احسانه در مقابل والدینتان احسان بکنین احسان چی هست که ما در مقابل والدین بکنیم احسان از زبان و از گپ زدن شروع میشه در مقابل کسی که تو احسان میکنی باید هر کلمه را که استعمال میکنی در مقابل هر کلمه باید متوجه باشی اول در قلبت بسنجی که من بر مادرم اینی کلمه را استعمال میکنم بر پدرم اینی جمله را استعمال میکنم الهی از این جمله تو راضی هستی اگر فامیدی که الله جل, جل جلوه این جمله تو ای ای را در احسان احساب میکنه این جمله را بر مادر والده ای اگر فامیدی که نه یکمه که در صد کلمه ازی شاید یک کلمه ازی احسان نباشه خداوند گفته او کلمه را نگده مقابل مادر و پدر منافق اول میگه باز پسان فکر میکنه موحد اول فکر میکنه باز باز از او کلمه را از زبان خود خارج میکنه اول فکر کو. من میخواهیم اصابم خراب است در جریان اصاب خرابی میفهمی که نشه که در مقابل والده کدام کلمه بگویم ما غذبناک هستم بفهم که غضب خدای عزوجل از غضب تو که خیلی قوی‌تره غضب تو چی خواهد گه غضب تو چی خواهد کرد؟ کل غضب تو در چار کلمه زشت خلاصه میشه اما غضب خدای عزوجل بسیار خطرناک است نعوذ بالله من غضب الله همیشه انسان باید که خدایا من و تو پناه میگیرم از غضب تو بغیر از خود ذات خدای عزوجل به کسی دیگه از غضبش پناه گرفته نمیشه پس نباید در حالتی که تو غضبناک هستی ذات قهار را فراموش کنی که غضب و قهر و از او و جبروتی از او بالای کسانی که نافرمانی خدا را می کنند بسیار قوی تر و شدید است. از این خاطر اگر غذاب خدا در مقابل غذاب خدای عزواجل قرار بیتی باز غضب تو خلاص پنچر میشه بادش میره گپش خلاص میشه آرام میباشی ما چی مکی کی ما انسان ضعیف ما یک دندان درد باشم تا صبح نفس مبرایم و او ذات قهار پس من نباید در مقابل قهر خود غذاب و قهر خدا را بر خود جلب کنم. حتا انسان ها و جوانایی که با ایمان هستند، مسلمانای با ایمان هستند، وقتی که پدرش، منم میگم ها کلشان ملائکه هستند، کل پدرها خوب هستند. متاسفانه بعضی از پدرها هم هستند که خدا را غضبناک میسازند. پیغمبر خدا را غضبناک میسازند. علاقمندیشان نسبت به قرآن و ساز و دول و دل و برواج و به کلتور و بیگپاز زیاد است. ایواز که قرآن بخوان خوشی مردم نسبت به خوشی خدا پیشش ارزش زیاد دارد. ولی یک گفه دیگه هم است که اینمی پدر و مادره که با اینمی صفات هستند با وجود از هم اینمی یک امتحان است بر ما تو و جوان و نوجوان که ما در مقابل اینمی پدر و مادر باید احسان بکنیم ای که باز او چه قدر گناه میکنه ای که باز او چه قدر اشتباه میکنه اوش او باز خدای عزوجل محاسبه میکنه ولی ما و امتحان میکنه که تو در مقابل اگه پدرت خوب آدم است رابش بسیار خوب داره اشتباه نداره غلطی نداره همیشه در دا بغل خود میگیره همیشه مصرف را میده همیشه بر تو کار خوب میکنه باز این که کامل که تو در مقابل از احسان ببینی احسان, احسان چه وقت میشه؟ که در مقابل از او که جانان بدکی ز به حکم دبل بیا چیز ماخه باد بینه که وقتی که او بدی میکنه مقوبه میکنم او اگر زشتی میکنه میکنم توازو میکنم او اگر اشتباه میکنم ما اشتباه نمیکنم میکنم ودر اگه حق مرا میکنم پدر جان سریز که تو حق مرا ولی ما به تونه به خاطر رضای خدای از از حق خود تیر پدر جان تو کار میکنی که خدا و پایغمبر خفه میشن ولی من خاطر رضایت خدای عزواجل به تو اطاعت میکنم و در مقابل تو زشتی باز زشتی سعود برخورت نمیکنم بنا ان احسان با زبان با لسان با گبزدن احسان با حرکات دست در او قسم که تو که در مقابل یک رفیق و اندیوال که امو هم زشت است امو, امو هم بد است که تو دستک میزنی که تو با و بچه با فکرد با با با باز و بچه چطور کل امین حرکات دوستا احسان که در مقابل پدلت پسندتر میام میگم وقت بالله ما باز ما و با شما میفانی میری پسندترش احسان با دست همه احسان با زبان همه احسان, احسان میشه که تو از جیب خود برای والدینت تخصیص بدی خانم حق داره خجالت نمی کشی. خجالاندن میکشی که به خاطر رضایت راضی ساختن خانمت برش میری طلای هزاری بگی و هزاری و 500 دلاری و 1000 دلاری میری تا گردن خانمت میپerte که خانم جان بگی این لاکت طلا رو بر تا آوردم بگی خانمم جان اینی تلا رو بر تا آوردم بگی خانمم جان, خانم جان. تکه که متر 11 صدی بود خواسته بود اینا بر این آوردم اینا صرف اتکای دیجا نبوده کابل نبود از لندن بر تا آوردم از این بر تا از دبی بر تا از چین بر تا خواستم اما مقابل پدرت از دیگ هزار کمرت مشکنه کمرت مشکنه که اونجه خدای عزوجل بعد میگه احسان که تو محسن است که از پیسه جیبت برای والدین تیر نمیشن مادر پدرش مادر و پدرش برای یک دانه سیب نیازمند است و اولاد خبیثش یک دانه سیب برای والدین خود نمیبرند. مادر و پدرش به دونند تابلت یک مسکنی که پاینو بهدار پا بمیده، احتیاج داره. به یک بردن پیش دکتر احتیاج داره و این میگه من مصروفم از در کار هستم، چطور هستم، چنان هستم و باز اینمی انسان بدبخت که روز متاسفانه در افغانستان ما روا شده، بازی انسانهای بدبخت در حال که والدینش ای, ای کرده آخ چی را میگن؟ آخ چی را میگن؟ ما مردم افغانستان حتی اصلاحات قرآنی را به خود ترجمه میکنیم اقدر مفسیرین دروگوی شیطان صفت در افغانستان زیاد شده که قرآن از روی خوانده نمیتونه دوای تفسیر میکنن میگه میکن. اوقخ مادر و پدر است که مادر و پدر بر تو بک بچه ایمت را آخ این خلط است؟ ای تفسیر قرآن نیست که مادر و پدر بردو یک بچه ماقص دی. عاقق در زبان عربی یعنی خفه شد. یعنی جگر خون شد. یعنی متاثر شد. یعنی از جبر تو، از عمل تو، از حرکات دست تو، از گفتن تو، از خستشان تو مادر پدر جگر خون شد. مجردی که جگر خون شد تو عاقش شدی. شرط نیست که در زبان خود بوده یک بچه متواعق است. ولی فلانی رو پدر مادرش آخ کرده. آخ کرده. ترا آق کرده تره آق نکرده؟ <تصفيق> تو آق نیستی؟ والا فلانی رو مادر پدرش گفته که ولی تو آق هستی خب او آق شد اما تو چی؟ تو که در مقابل پدر بدزبانی میکنی حرکات دست تست جگه عصاب خرابی میکنی دشنامش نامش میتی در پهین رو خفه میزازیش مادر و پدرش لعنت خدا سر از او که مادر و پدرش از زیر خانه و در منزل پایین پاکتش با این غذا را احساس میکنه اما برش غذا نمیبرن باز اینمی فرزند بی ایمان اینمی فرزنده که غذاب خدا سرش لعنت نازل شدن ای باز بعد ازی که مادر پدرش فوت کرد، باز میرسیم در روز دویش ما مب... یک هزار دلار مصرف کردم در روز سه سه مب... اشتاد مصرف کردم غذاب خدا سره تو لعنت خدا سره تو باد که در زندگیش که حقش هست برش تا سید نمید در زندگیش برش سر خانمت امی قدر حاکمیت نداره که مادر و بدر مریض است یا او مریض است یا مادرش یا پدرش بر از اول غذا را باید ببری نیست اون که از خانم میکنی ولی این انسان دروغ میگه این کذاب است این دروگوی است به خاطر ازی ای ای نه به مادر و پدر خود میکنن کسی که به مادر و پدر خود خدمت میکنه در زندگیش برش خدمت میکنه اما بعد از مرگ ایگ مردم افغانستان که میکنن یا ریاکار هستند یا دروغگوی هستند. یا به خاطر خودخواهی خود که به مردم خدا نشان بدن او معق مادر پدر در خیرات های روز دو روز سه در شو دی چهل چل گرفتنها در گپا حق مادر پدر ادا نمیشن حق مادر پدر در زندگیش ادا میشن ای ختم ریاکاری ای خیرات های ریاکاری ای روز دو روز سه ای شب جمهگی ای چل در کدام کتاب هست که برای مادر و پدر تو در زندگیش خدمت نکن باز بازی که مرد باز تو دلک و سیلک و چارلک مصرف کن ای خود بازی دادن است فریب دادن است ترسم نرسی و کعبه اعرابی ای که این رحک تو میروی روی به ترکستان هست ای اسلوب که در زندگی تو اختیار کردی ایتو رو به طرف دوزخ میبره با ای خیرات او کسایی که روز دو روز سه میکنین او کسایی که شبجون بگید چلا ما کم گرفتین این ره که شما میرین به طرف دوزخ هست اگر تو میخواید جنت در زندگی از جیب تخصیص بگو که من ما ماشم این قدر برای مادر و پدرم تاین کردیم مادر در آیداتم برای مادر و پدرم پیس همیتم من که پدرم ضرورت داشتن باشه برش پیس همیتم من از جیب خود برش پیس همیتم ما او مقابل دیگرها کم نمیارم اونجاست و بالوالده احسانا. احسان احسان با به زبان احسان با حرکات دست و پای احسان با الفاظ احسان چند قسم میشه با،, با الفاظ با زبان احسان با حرکات دست احسان با بودماندن با دست در مقابل مادر و پدر با دست میشه با چشم میشه با قلب میشه که قلب مهربان با داشته باشی با مادر و پدره. با پیسه دادن و مصرف دادن با مادر و پدر میشه احسان با تختی پشت میشه که در تختی پشت مادر و پدرت تا, تا, تا پیش دا داکتر مابری او انسان است. اونور محسن بگیم که غریب است پیسه ندارد و در روز سه مادر خود, خود, خود, خود یک رو مصرف نکردن ای مادر خود نگردن لکن وقتی که مادرش مریض بود و پدرش مریض بود در تخطیق پشت خود پیش دکتر بود اینی انسان غریب که مادر و پدر خود پیش دکتر میبره و پیسې دواش قرض میکنه برایش دوا میخره اینی محسن است نیکوکار است اما اون میلیونره که در زندگی مادر و پدر خود خفه ساخته ور شو جمعه و روز سه شو تا چلش ده هزار دلار هم کرده اینا میگم تو محسن نیستی ترسم نرسيبه کما ای اعرابی این راه که تو میروی به ترکستان است تو به طرف دوزخ در حرکت هستی سر تو غضب خدا نازل کی کنم مادر پدر روز روزی رو بندیوالای خود پلو میتی و قرمه و کباب میتی. چیکنه پدر و مادر شبه چیمه گیره چیکنه پدر و مادر چی چیکنه این دیگاهی که تو بار کردی باور بکنی در خانه رفتن کسی گفت گفت استاد مادرم نمور زنده شد. چرا گفت چشمایش میدید اما دانش نمیچش احساس می کنید بوین اما دانش نمیچش سیوه میدی. بالا می برد به اما او نمی, نمی برد اصاد پدرم نمورد شد نفسش برا دوا دواه برامده لاکن لیکن بچی خبیس و خیلزیرش بچی بی ایمانش بچی خدا ناترسش خانه خانم خود لاکت می و برازی پیسی دواه رو نوید آیی خود در صف امت رسول خدا صلی الله علیه و salam حشر خاطره هرگز هرگز معصوم بعضی که زیاد تشویقت میکنه که جوجه مگی کو نام خدا کنی و خدا خیراتش قبول کنه و خدا چلوش قبول کنه مازم ساده و ملا س که خ می خر من این خدا خیرات تقبل نکنه خدا شاوج مگه قبول نکنن خدا روز سه تقبل نکنه تو آ در دوزخ زخم میری گناهی کمبیرت کردی واردین از بهشت خفست وقتی که بر مادر پدر دوا ننگفتی تو مجرم دی گناهگار ناگار خلاص والسلام. و سلام وبل واردین احسان اما این ما یه ببلغن نهندل کهبرا او کلاه باز خدای عزواجل نگفت تنها کلمه انسان برای یک انسان مسلمان من فکر میکنم که امیخ هم میگفت که و بالوارده احسان کافی بود لکن خدای عزواجل باز تعکید میکنه باز میگه که اگر یکشان به شتوب و بزرگی رسید ریش صفیت شد یا مادرت سر صفیت شد یا پدرت ریش صفیت شد فلا تقل ما افن میگه اون نان آوردیم اون دوا برشان گرفتیم او نسای من می میکنم او نا لباسی بسیار خوب میپوشن او پدرم از کل بالا بالا میشینن لفت سرز نموتر میرسنم شنن برش اف حمد اف چی مانه اف در زبان عربی اسم فعل مزاری زد. فلا تقل لهم افن اف اسم فعل مزاری هست این رو علمای زبان عربی همی قسم میگن میگن بمانای التجی رو علت دوت چیم رو یعنی خسته شده یعنی در مقابل والدینت نگو که مانده شده اینت. تو از وظیفه میری مادرت میگه بچم مادر یک گلاسو تو بگی مادر جان مانده هستم میگه اینو می لحظه هم دهنه ماندگیت نگو که مانده هستم برو برش گلاس آب اوا بهت حالاته قلهما در مقابل والدینت پس عزیز می میگن که کلماتی که از که عزیزی عزیزی عزیزی در بلندتر است او را خب باید قطعا با پدر تو نمی فهمی شاید پدر سیست نفهمد. سوی تو بالاتر باش با اما تو چون این بیادهی بیره بکنی پدر تو نمی فهمی پدر فکرتو نمی رسن مادر این مسئله را تو نمی فهمی ما سویم بلندتر است. ما تحصیل بلندتر است. ما تجربیم بلندتر است. ما زیاد کار کردیم. ما زیاد مزید دیدیم. ما زیادتر مزید می فهمم. پس ای کلیمره وقتی که خدا گفت اف نگو، ای کلمه شده مقابلش میگی. ای کلیمره هم باید مقابل والده این تستیم باز نکن. شاهد بگی دلم می که تخیی چطور کنم. خب پدر مادر ما مادر مای ما نورمال لیزه که خیدگر چ امتیان خداوند است و اگر افت گفت و اگر دشنام داد و اگر بد گفت تو مجبور هستی که امر خداوند خواهند وقتی که افت نمیگی کلمات از او کده سخترش چی هست تو نمیفهمی، تو غلط کردی آرام بشی باندگه دیگه اگه پارن گفاش از او کده بالاتر شده میره نی درجه غلزتش خفیفتنی در کلمات بزرگترینش دشنام است. پس تو از امی خفیفش نه یفیدیه، پس از خاطر هم تو که کلمات که بالا میره و میره و میره تا به دشنام دارن، از کل از یا باید تو اجتناب بکنی، اگر تو میخوایید، زندگی قرآنی داشته باشه، اگر میخوایید که زندگی قرآنی داشته باش. در, در زندگی قرآنی انسان احیاناً آبروی خود هم از اسمیت هست، پیغمبر صلی به خاطر زندگی قرآن سرشام شام ترقید خونایش هم جاری شد دندان‌هایش هم شکست چرا به خاطر از من حیصی قرآن متحرک زندگی بود و تو میگی من مسلمان هستم پیرو رسول خدا هستم سعی است که پدرت اشتباهاتی دارد من هم میگم که پدرکلشان ملائکه هستم و پدر هیچ کس ملائکه نیست بدون اشتباه نیست لکن تو در مقابل از اینا چی باید بکنی تو باید در مقابل از اینا اف نگوی و از اف بالاتر ای جملات زشتی در حتی میگه که اگر یک کسی حق مادر و پدر ادا نمی یک کسی خودش مادر پدر خود میگه که دو بزنه یک گناه بزرگ است دفتنه پیغمبر خدا صحابه کرامی آیا اتی یک جوانی یافت میشه که مادر و پدر خود دشنام بده گفت که نی مستقیمند دشنام نمیدی غیر مستقیم دشنام بیدیم یک نفر همه پدر پدرشو دو و میگه به پدر خود مادر شده و میزنه میگه با مادر خود باز اونو وقت تر وسط ملائکه ها که باز اون طرف کشانده شدی باز باز زنجیرهای آتشی بسته شدی باز میفهمی که گب در کجا هست که اون بئوکن به ما کنتم تعملون باز تمام جنایت ها و گناه های در مقابلت میکشم باز اونجا هستی که زار زار بنالی و زار زار گریه کنی و این خط ما و این شوا و جمعگی هایی که به دروغ کردی و به فریب کاری کردی یه یعنی برات یک رو به پا فایده نکنه و طرف دوزخ کشانده شوی و مادر و پدر هم از پیشت نارضا باشن باز اونجا هستی که سرنگون و پیش تمام مخلوقات شرمنده و رسوا اینجا خاطقیستی خداوند متعال جل جل هم ما شما را از رسوایی و شرمندگی روز آخرت نگاه بکنه. سبحان سبحانه بکره بالعزیتی امای سیفون و سلامون علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین